مد و مناجات با چهارده معظوم علیهم السلام سرابایم محبت بر شما هست به قلبم اشق و مهر مصطفی هست علی و فاطمه ذکر زبانم دلم اندر هوای مجتباه هست دو چشمم عشق ریز کربلا و یاد ساجدین شام بلا است کلام باقر و صادق به آلم کلید قفل ها و رهنما هست زباب حاجت موسی بن جعفر گدارا عزت و شاهی عطا هست همانا زامن آهو شدن هم فقط کار علی موسر رضا هست عطاف و جود بی اندازه آری زه التاف جواد ابن رضا هست نقی و اسکری سردا به غیبت دو پایم در خیال سامرا هست دم آدم ذکر عالم شد الهی گل خیر نسا مهدی کجا هست تمام شعرهایم لطف خالق ز من و تمامی از خدا هست